برنامه از جوان و فرهنگ خداوند مهر و حقیقت سلام بر شما فرهنگ دوستان همراه افسانه ها نه تنها حکایتی بازگوش شده از هزاران سال قبل بلکه روایت های ساده اما رمز و راز زندگی روزمره با مطالعه قصه ها و افسانه ها می توان درباره اندیشه و گفتار مردم اطلاعاتی کسب کرد در برم هزار افسان سری میزنیم به دنیای شیرین و پر رمز و راز افسانه های ایرانی و از این گنجینه ای ارزشمند معنوی افسانه ای رو براتون نقل می به نام افسانه حلال و حرام برگرفت از کتاب قصه های مردم به گردآوری پژوهشگران پجورشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی به انتخاب تحلیل و ویرایش سید احمد وکیلیان روزی روزگاری در زمانهای خیلی قدیم مرد فقیری بود که در فقر رو نداری زندگی می کرد تا جایی که روزی بالاخره مجبور شد برای گذران زندگی زن و چش به ولایت غربت بره تا شاید فرجی تو کارش پیدا بشه و با پیدا کردن شغلی آبرومند سرسامونی به زندگی خودش و خونوالش بده مرد افسانی ما ها در رکاب بیابون گذاشت و رفت و رفت و رفت تا به شهر کوچیکی رسید و بعد از چند روز سرگردونی بالاخره تونست کاری پیدا کنه و مشغول بشه مرد مدتی کار کرد که روزی صاحب کارش که مردی تمکار و خسیس بود بهش گفت از امروز دیگه کار تعطیله. تو چند وقتی که برای من کار میکنی ها؟ مرد جواب داد یک ماه ارباب سابکار گفت خواب ما چقدر میشم؟ مرد گفت از قرار روزی قران جمعه میشه سی قران صاحب کار که تمکار و خسیس بود فکری کرد و گفت من چهل قران پول حرام دارم و پنج قران پول حلال تو؟ تو به کدوم یک از این پولا راضی میشی؟ ها؟ چهل قران پول حرام پنج قران پول حلال مرد افسانی ما که خیلی مقید به حلال و حرام درآمد و کسب و کار خودش بود فورا جواب داد خب معلوم ارباب من پول حلال رو ترجیح میدم چون هیچ وقت توی زندگیم پول حرام نخوردم و راضی با اون نیستم صاحب کار شیاد وقتی دید که کلکش گرفته و تیرش به هدف خورده فورا دست توی جیب قبای اطلسش برد و پنج قران به مرد افسانه ما داد و اونو روان کرد مرد به شهر رفت و گشت و گشت تا بازرگان محترمی رو که از اهالی شهر خودش بود پیدا کرد و بعد از سلام و چاخ سلامتی دست تو جیب کرد و پنج قران رو به اون داد و گفت قبول زحمت کن و این پنج قران رو به دست زن و بچم برسون و به اونا بگو که به زودی بر بازرگان نگاهی به پنج قران مرد انداخت و با لحن آرومی گفت آه ای هم همولایتی این پول خیلی ناچیزه بهتره به جای اون کالایی حتیهی چیزی تحیی کنی تا من فردا که به شهرمون میرم اونو برای خانوادت ببرم این پول خیلی کمه مرد قبول کرد و به بازار رفت ولی هرچه تلاش کرد نتونست با پنجران چیزی برای زن و بچهش بخره و بالاخره خست و کوفت و ناامید گوشهی نشست در این موقع پیرزنی رو دید که سبدی در دست گرفته بود و داشت به اون نزدیک می شود. مرد از جا برند شد و به پیشواز پیرزن رفت و ازش پرسید ماترشان توی اون سبد چیزی برای فروش داری؟ پیرزن که انتظارش این سؤالی رو نداشت با خوشحالی جواب داد البته که دارم دوتا دوتا گربه گلباغلی یکی از یکی قشنگتر و ملوستر بیا بیا خودت اونا رو از نزدیک ببین مرد به داخل سبت نگاه کرد و به گربه های گلباغلی نگاه کرد اونا همونطور که پیرزن گفته بود یکی از یکی قشنگتر و ملوستر بودن مرد از اونا خوشش اومد و به پیرزن گفت مادشان من حاضرم پنج گران بابت این گربه ها بدم اونا رو میفروشی؟ پیرزن با خوشحالی گفت بله بله پنج گران رو و اونا رو ببر انشاءالله که قدمشون برات خیره مرد افسانه ما پنج رو داد و سبد رو گرفت و به نزد بازرگان همولایتیش برگرشت مرد گربه ها رو نزد بازرگان برد بازرگان که مردی نیک نفس و بلند تب بود چیزی نگفت و قبول کرد که اون گربه ها رو به خانواده اون برسونه روز بعد بازرگان همراه با قافله بزرگ براه افتاد و رفتن و رفتن تا به دیاری آباد رسیدن که حاکمی عادل بر اون حکومت میکرد به رسم اون روزگار وقتی قافله به پای باروهای شهر رسید بازرگان هدیهی برای حاکم اون دیار برد و ارزه ادب کرد. حاکم هم سرشناسان قافله رو برای صرف نهار به منزلش دعوت کرد. مهمونا وقتی به خونه حاکم رسیدن مأموران زیادی رو دیدن که هر کدوم یه چماغ و یه زنگوله در دست داشتن. اونا از خانسالار پرسیدن این همه نگهبان چماغ و زنگوله به دست برای چیه؟ اونا چه وزیفهی دارن؟ خانسالار جواب داد ای میهمانان عزیز ما در این دیار از تمام نعمتهای خداوندی از شیر مرغ تا شاخ مار به اندازه وفور برمندیم فقط فقط تنها ناراحتی ما جونورای ورای که همه جا پراکندن و مایه عذاب ما هستند. اونا به هیچ چیز رحم نمی‌کنن و هر سال مقدار زیادی از خوراک و پوشاک ما رو نابود می‌کنن. مهمونا از خانسالار پرسیدن خب یه چاره‌ای بیاندیشین و خودتون خلاص کنین خانسالار جواب داد متاسفانه هیچ حکیم و دانایی نتونست راهی برای مقابله با اون جونوران موزی به ما نشون بده. حالا این نگهبان ها با چماقی که در دست دارن و شما میبینین در هر نوبت باید نگهبانی بدن تا با صدای زنگ و ضرب چماق مانع هجوم اونها به سفره و های ما بشن. بازرگانان و همراهانشون با تعجب و حیرت تقاضا کردند که اون جانوران موزی رو به اونها نشون بدن. به محض اینکه صدای زنگ و چماق خاموش شد اون جانوران موزیک چیزی جز موش نبودن از هر گوشه و کنار ظاهر شد بازرگان و همراهانش با دیدن موشها به خنده افتادند و به حاکم گفتند چاره <تصفيق> ای کار خیلی آسونه بعد بازرگان به یکی از خدمه گفت برو برو سبد گربه های گلباغلی رو حاضر کن تا سبد رو آوردن بازرگان در سبد رو باز کرد گربه ها که مدتی بود توی سبد اسیر و حوصله در اون جای تنگ مونده بودن در یه چشم هم زدن بیرون پریدن و دندون و چنگال و تیز خودشون رو تو تن موشهای موزی فرو بردن و هنوز لحظاتی نگذش شد بود که موشها یا به خاک و خون در غلطیدن یا هر کدومشون به سوراخی خزیده و از نظرها پنهون شدن حاکم و درباریان انگشت حیرت به دهن مونده و شکر خدا رو به جا و به بازرگان ای ما گفتند ای نیک مرد. این دو گربه رو به ما واگذار کن. در عوض هرچی بخوای تقدیمت میکنیم. بازرگان گفت، حاکم به سلامت باد. این دو گربه امانت مرد بینواییه که باید برای خونواده درموندش ببرن. حاکم گفت، سه سک زر تو رو راضی میکنه؟ بازرگان گفت، قربان، ارز کردم اینا امانته. و خیانت در امانت شایسته نیست خلاصه اینکه اصرار از حاکم و انکار از بازرگان در نهایت امر بازرگان در قبال ده کیسهی زر گربه ها رو به حاکم داد و همراه با همسفران به طرف مقصد روان شد بازرگان وقتی به شهر خودش رسید فوراً به خونه ی مرد بینوا رفت و ده کیسه زر رو بی کم و کاست به زن مرد بینوا داد تا خرج معاش کنه زن که تو هفتاسمون ستارهی سراغ نداشت اون کیسه زرها رو گرفت و با اون خونهی بزرگ و مغازهی پر از کالاهای مختلف و قطعی زمین زراعی خرید و خودش و فرزندانش رو از چنگال بی رحم فقر مدتی از این ماجرا گذشت. مرد افسانی ما نومید و دستخالی راهی ولایتش شد مرد به خونش که رسید درزد زد مردی در رو به روش باز کرد و از اون پرسید با کی کار داری؟ مرد جواب داد اینجا خونه منه پیرمرد گفت من این خونه را از زنی ثروتمند اجاره کردم که قصرش اون طرف شهره مرد با تجرب گفت ولی اینجا خونه من بود بعد نشونی خونه اون زن رو گرفت و رفت سراغش مرد به غصری با شکوه رسید و از اون همه شکوه و جلال به حیرت افتاد آروم و با احتیاط در قصر رو کوبید زن که در حیات قصر در حال قدم زدن بود در رو به روی مرد باز کرد وقتی همسر شدید با خوشحالی گفت سلام خوش اومدی خوش اومدی مرد با دیدن همسرش با تجوه پرسید تو، تو اینجا توی این قصر باشکو چیکار کار میکنی؟ زن جواب داد این قصر خونه خودت مرد این نتیجه سختی ها و مرارت که توی اون ولایت غربت کشیدی و تحمل کردی بیا، بیا که بچه منتظرن مرد که هنوز متعجب بود وارد غصد شد و در یک چشم هم زدن بچه ها بال لباس و ها به استقبالش رفته مرد با دیدن این وضعیت زبونش بند اومد و توان صحبت کردن نداشت اما زن مدام از فلان معامله که سود زیادی داشته و زمینی که خریداران زیادی داره با شوهرش صحبت میکرد و می مرد الان کاروانی از ما در راه بلخه و فردا هم کاروانی دیگه از ما به یه شهر دیگه میرسه مرد از حرفای زنش سر در نمی آورد و مات و مبهوت به حرفای اون گوش میداد اون هنوز نمیدونست این همه تغییر و تحول برای چی اتفاق افتاده تصمیم گرفت به دیدار مرد بازرگان بره و ماجره رو برای اون بازگو کنه مرد به طرف خونه مرد بازرگان به راه افتاد و چگونگی احوالات خودش و خونوادش رو از مرد بازرگان جویا شد بازرگان هم ماجرای موشها و فروش گربه ها رو برای اون تعریف کرد و گفت خدا رو شکر، خدا رو شکر اقبالت بلند بود و دوران سختی و تنگ به سر اومد مرد که پی به حقیقت ماجرا برد صورت بازرگان جوان مرد رو بوسید و گفت من این مال و منار رو مدیون امانت داری و جوان مردی تو هم بعد به خونش برگشت و به اهل و ایالش گفت این همه نعمت و رحمت از برکت پول و روزی حلاله فردای اون روز مرد افسانی ما با چند کیسه زر به خونه یه مرد بازرگان رفت و گفت ای دوست جوان مرد از تو تقاضا دارم این چند کیسه زر رو به رسم هدیه از من قبول کنی هر هرچند هر چند امانت داری و جوانمردی تو بیشتر از اینها ارزش داره بازگان با اصرار زیاد مرد کیسه های زر رو قبول کرد و سال سال به خوبی و خوشی و صفای دل به زندگیشون ادامه دادن و همچنان راه جوانمردی و امانتداری و درستکاری رو در پیش گرفتن افسانه ای ایرانی حلال و حرام رو براتون نقل کردم به نقل از کتاب قصه‌های مردم به گردآوری پژورشگران پژورشکده مردمشناسی سازمان میراث فرهنگی به انتخاب تحلیل و ویرایش سید احمد وکیلیان. ها و افسانه‌ها خواب‌های رنگین آدمی هن که در طول زندگی مردم دست خوش تغییر شدن و اونچه امروز نقل میشه مثل دیروز نیست قدر این روایت شفاهی ما در و سال خردگان رو باید بدونیم و برای پاسداشت اونها تلاش کنیم هزار افثان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور ویراستار الهام اشجع، اجرا مهرام دوستی صدابردار اکبر حساری یه کننده زهرا بدالله زاده تا افسانی دیگر بترداد